دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد که از حضرت سلیمان اشرت اشارت آمد خاک وجود ما را از آب دیده گل کن ویران سرای دل را گاه امارت آمد این شرح بینهایت که زلفیار گفتند حرفیست از هزاران کن در عبارت آمد ای و من بفوش زن هاری میالود کان پاک پاک دامن بهر زیارت آمد امروز جای هر کس پیدا شود ز خوبان کان ماه مجلس افروزن در صدات آمد بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است همت نگر که موری با آن غارت آمد. از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه دار. کن جادوی کمان کش بر ازم غارت آمد. آلودی تو حافظ خافز فیضی زشاخ درخاخ کن انصر سماحت بهر تحارت آمد. دریاست مجلس او، دریاب وقت و دوریاب، هن ای زیان رسیده، وقت تجارت آمد